بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله جرم دلال و صلی الله علی و رسول و آله و و و الله و آل طیبین و آخرین و اهل دار و اهل جای منهای الله تعالی متعرض روایاتی شدیم که خیلی مشهوره برای ال و این ناس برالله اهل دیگر اندیشم نکن و مخصوصاً که در کلمات بعضی از اعلام مثل مبوم استاد تعبیرشو در حدیث به موازی یا سهیه شده است که این حدیث سهیه یا مثلا چند تا از از که با اون توضیحاتی که از کردیم اما این تعبیری که ما در اینجا داریم بعضی داره که ناسبی و زنام و, و ناسبی شرو هم در بسالاب زامی و یهودی و مسیحی من. تو بعضیش داره که بههوه اهوان، تو اینکیش داره که انجم در کرد. دوست تا تعبیر مختلف. فی تعبیری داره که ان الله نمی‌خواهد خر و انجم سونر کرد و اینا ناس و اهل و لانجم در کرد. از که یعنی اون همیشه نقطه پنیر رو در ذهن ما رکسم باشه. توی که من دیدم اگر نگاه کنید کامپیوتر مرحوم صدوق دقیقاً هویده به اینم که فقید نه بوده فقط توی به اصطلاح چیز علل بوده به ذهن من اینطوره به هر حال چون مرحوم صدوق در کتاب علم سندی رو که ذکر کرده به حسب ظاهر معتبر می‌دونسته یک حسن بن علی توش هست یا میذان ابن فضل مثلا یا حسن علی بخشاء در هر حال این حدیث رو قبول کرده بودن البته خب می که این حدیث در کتاب تحذیب و در کتاب کافی آمده و شما معتبر نیست لیکن به اعتبار کتاب به اصطلاح علال شرایل از کردیم با مراجعه به یک مورد دوم در کافی چون کافی دوبار این حدیث رو ابرده در مورد دوم در کافی تصویل می‌کنه کنه حسن ابن, علی ابن مهران اونجا هم از ابن نبی ارکو به هم از ابن نبی با این تصویل کلیمی که این اون مهرانه اجمال در کتاب الان در حسر الان از بین میده یا لعاقل احتمال چون مثلا ما وصوب و اثمینانه وصوب و اثمینانه بیگن حدیث نمیمونه که سندش معتبر باشه پس رو دقت بکنیم نقطه اینه در یک مصد در حسر بوده و اینا حمله بر احدات ما کردن که هر دو سره هستن و یکیش فتحی فتحی نیست این راجعه پس این حدیث خلاف آنشه که الان در کتب آمده ممثل نیست این که تبدیل موثره این حدیث موثل نیست مثل یه مطلبی بود ما صابرن، قرارن گفتیم اون رو در نظر بگیریم اون مطلب لکیفیست یعنی از که این در مجنوعه مصالبی که در فیر حتی عواله شنافته شناخت پسابره وازی همه باش برخورد ما به دنبال دو چیم هستیم ای که گفتوانیم مطرون دینی که اصطلاحا همون کتاب و سنت در رواییات معتبر هاکی از سنت در و یکی هم فرهنگ دینی ما این دو تا پروزیم فرهنگ میکنی کسی چیزی بین مردم مشروع بشه بین حتی غالبا مشروع بشه لیکن به درجه ای که بخواییم او رو اصناب بدیم به موتون و به مثلا آیات و علیه آیات و اون درجه نهست از کردیم بین قلم مشهور بوده که حدیث زعیب اگر مثلا در کتابی آماده باشیم مثلا اخباری ها اخباری ها این حدیث ماتهار در کافی موجوده است یا مثلا ادهی بگرسن چون دیگه این حدیث جا اصاده است زیادی نحل کردن اون زرفه او انجوار بگم ما عرض کردیم اگر شهرت یه هم پیدا کردیم واقعا خیلی مشروع تو اصلا یه خودتان میگونی من به اجتا نیست بگیرم خود من تعبودی شد مثلا هستم به خاطر وجودش در کافی محسوسم خیلی مشروعه بکن ما عرض این شهرت قدر متعاقل اینجا یک فرهنگ دینی میکنه نه موتون دینی یعنی معلوم شد حالا در میان فرهنگشیه اینجا افتاده بود که از ممکنه شد این دقیقون تر از ما بین فرهنگ دینی و ما بین دینی ما گاگا میشه مثلا یه آیه حدیثی مشهور محروفه همه میگه راسته لیکن ما میخوام اینو رو اصواق بکنیم که آیا این مداره شورت اصواق فرهنگ دینی میشه یعنی یک فکری است که بین شیعه محروف شده یا میتونیم اصناده به اهل بیده به رسول الله بده این نوتی اصاسی هسته در خیلی از احادیث ضعیف که چوقدی پیدا میکنه و جا میفته، با عنوان فره میشه کرد مثلا اما همین هنی صبت همینطوره. شما مثلا تا زیاد شنید تو کلمات در سال منخواده مختلف و ان ناس را محلده درنجسم ن این زیاد گفته شده اما وقتی که بررسی می و به جایی بدن هیچج نمی رسه انصاباً خیلی مشکل برای از این که کلمه هنجرز در اینجا اون تهارت و نجاست باشه والا خودشون هم بحث داره و هر حال این برمان فرهنگ دینه بیدیم به این شیعه ترقیب شده خب این بد نیست اما این رو الان نصرت بدیم جزء متون دینه قرار بدیم الان شواهد ما کافی نیست این شواهدی که ما الان داریم شواهد کافی نیست که این رو جزو متون دینه قرار بدیم مزاقی این که یک مثلا امحام دیگه هم داره مثلا در کتاب مثل نمادر حتما که به لحاظه و سر در درجه دو سه و چار مثلا تا اونجایی که ما به ذهن اون این حدی فعلا نمیشه اسناد داد و این مجموعه روایاتی که آمده حالا توش کل داشته باشه باشه باشه, باشه این چند تا مشکل داره این مشکل اساسی به خود مرمول صاحب و داره که این پاکه یه مشکلی داره که شاید تو ذهن بوده که این برای 16 بوده مثلا شاید مثلا وقت تحاوت و نجاست نبوده مضافا به این که اصولت من ارز کردم تصویر ما از این به باید واضح یه دوش این اوتاق جمع میشه اگر اون چاه کره یعنی اون چاه واقعا چاهه خب آب همان چاه که تصیل ندارم اون چاه باکر اگر اون چاه به که کنده آب جرم میشه خب واقعا اصلا تصور این که انسان داره جایی که آبهای چرک و آلوده از افراد مختلف هست و خودش بشتر. اصلا تصور شستن تصور شستنش من صد صدق و که حالا بگه خسله اون بیشتر اوجالا آلوده میکنن که قصر نحسه این بیری که میگه کشتن او بیری قصاصه دو عامل است نه چیز در محیط مکه یا در محیط در مویه مدینه بود یا در محیط که کوفه بود اصولا هنوز برای ما اصلا مفهوم حدیث هم شکن نیست چون اگر چاق باشه که زار بیری خب تو اون راه داره در چاق خرق هست یا هیزه هیزه هست ببین هیزه که ادعا ادوارت هیزه رو به فرط بخونی خود اون پارچه یا پنبه رو که خانمان هیزه بخونی به کس رو بخونی هیزه بکس، اون پارچه هست که استعمال می کنم به نگه داشتنمون و این در رواید داری که خیرم بودید اون پیغام کنید شاه هست و پاکست روشتان هست خب این معلوم آب کساله و تایب اولا مزید نیست لذا انصاف قضیه. روی جهات مختلف اشار داره نه روی جهت واحد روی جهات مختلف نه فقط این روایتی که توش کلمه هست اون وایی که توش کلمه است واه شرابا ما یا واه احوانا ما این هم محل داره. اصلا کلیه این روایاتی که یهودی و در حمام جمع میشه و این اشاراتی که خوندیه کلیه اینها اشاره داره باغ نظر از اینکه حالا در مقام نجاسه هر سیاده و بعدشم انتظام دادنه بریم که مثلا ناسبی نجس باشه به معنای مستلق و همین ایام, ایام ایامیست که میگم بعد از این که اون جریانت شام پیشام یدید دستود و داخل ایتون این قرص بردن به یه مدر بعدا باشتم بعدم خود خب ماله کسی خود الهی نیست نه شد که ماله حضانت که هشیلادی ازید مثلا همه مردن جسمی جداسنت هشیلادی سجاد هجال عالبه چیزی نه شد. اما این وجود نواسه مخصوصا در مدینه که قریبان و عمران نواسه بود استر با خود بنی امیر بودند که بسیارم آشنی بودند و علی عالبه بودند و اهلانت می چیزی رفت نشده که اینها مثلا اگر دست به جایی میزیدن این من علیه و میکردن حالا غیر از چند تا روایت هست شاید بعضیشان سردش معتبر باشه من خودم خیلی گوستی ندارم که مثلا حضرت سجاد خانه میگرفت بودن که کانت تصب با علیتان سب میکرد علیه داریشان حتی به هزار حضر دفتن حضرت باواه نکرد من خوش درگیست درخید و دیدن بعد وقتی من بیرون این خانومشون رو کنه به سر با شخص منگو رو برمان سام حتی تصدیقی ممکنه. ازدواجی خیلی مشکل حالا زاره و هر وان کمی چیزی در این روایاتی که از کردم این که حتی همین خب روایت نیست با که در چند تا مستر آماده یکی از عزد زوجات حضرت سدو شده دو دختر تله هستی یا آمان درون مگر کسی تله هم ناسیبی ندیمه حالا جهانه خیلی هم راسترازی رو ماکان تصور این مطلب در خارج مخصوصا در این صد و خرده سال تا سال 132 که بنی امیه سر کار بودند و عمرایی رو که اینو به مدینه می‌رسادند و افرادی که دور بر اینا بودند و شدتی که اینها با اهل بیت نشون می‌دادند و مخصوصا اگر ناسپی رو باز توسعه به کسانی که از خود اهل بیت بودن شیعه به اصال وزارت خاندان رسالت اینها هم برای مصادره زمینشون بودن خود همین عبدالله محض دیگه وقتی که پسرش قیام کرد محمد نزدقیه اون حضرت صادق بزرگ هم برای بیعت و یه رئیس پلیس اش و اونها می نهرهونجواد به محمد رو دعنی حضر. اجازه نمیده هم مصادر رو که به عطم میکنه باشون. کسی که ایران ناصیبی بسنیم کنیم؟ ناصیبی یه چیگه از از خود خاندان رسالت یعنی از خاندان سادات حسنی و اینطور برخورد های زننده برخورد. خود حضرت رضا علیه السلام با چند تا از برزرشون تو کافی هم هست که بدانشون اهانت‌های بسیار بدی نسبت به هزاره‌های دیگر مگر کسی که یه ناصیبی میفهم ناصیبی مگر شود خودشون مثلا شهادتش رو شد. اگر من آبیشم یه یار ناصیبی، و سب به امام محصوم باشه، ما موارد زیادی رو داریم در تاریخ و تاریخ و هیچ نه مثلا امام رضا از این بردن بردارشون احتیاط میکردن دست بیش نمیزدند اگر کسایی خودشون که این چیزی نه نشده. هم در آیا حاله امتا این شبهه رو نقل کردن جواب دادن توی کتاب به استدار تنقیمشون لیکن زدن به زمان بنی اومهیه بحث زمان بنی اومهیه نیست ادهی از براظران حضرت از آقایشون احانت میکردن اصلا الفاظ زش به کار میبردن ادهی از خود کاندار حیل از ایشون با خود احلمه با امام و صالح الفاظ زش و قبیه رو به کار میبردن حالا میکنن که اصن گاری هم خود اهل بیت خانومایی بگیرفتن نمیگه راست راستوشن که اینا اصلا تحصیل کنه تصوب امنی یا بی دلیل شد تا که ولاد حالا 하자 طلب شده خیلی خوب بدارن بگن اینجاست که این بود ناجی سلسله لباسا ناجی بود به لوازمش که نجاسه این ما اثبات این مطلب رو الان نمیجونیم بکاریم اصولاً ما نداریم که اهل به اهل تفسیل بقاید بودن بین نواسبشون و غیر نواسبشون اگر حکم حکمتها بار کنم بر همه بوده تفصیلی ما نمیدیم زمین فهمون که بشید بایی خیلی سنویی و دست دیوال بکیش دست دیوال بعد, بعد باید غیر نه. باید غیر ناصف گفت نه فلان دست تو دو مسافه هم می‌دونی زن خودره وایت نیاز کتاب که توش مسافه داره، حالا با هم نیش می‌خوند عذاب. من نیم قسمت وارد و ازش مجموعه شواهد، ما سه خود عقل بیش از یک روز دوست تو قسمت کانالی از این بودن. خب، ایت خبیعدم بودیم همهش را اخیارت می‌کنند، نه قسمت را نهیت چی می‌زنم. خیلی خیلی بیاییم انسانها با شواهدی که ما داریم، ما میخوام اینو ازش کنم با مجموعه شواهدی که داریم. چیزی نبوده نسبت به دنیای اون که به عثربزایی مثلا مسلمان نماز می‌خونه روزه میگیره یا تحصیل قائل بشه که اگر مثلا ناصبی است، ناصبی نیست. این به اصافن اثبات این خیلی مشكله. با این حدیث که ما داشتیم اینطوره بسیار بسیار مشكله و انتظام به این مطلب خیلی سخت این را که الاوث واقع خوب نمیشه هیچ شایزه خاصی مایی هستم فعلا نه نه نه سندش رو بخون استاد بخون اشریه عن عادل بن خفئی عن خواصدم عامه عن عیلم قلم قلم قلم قلم قلم یه این مهمر قرار نشناته بپرمو الگی یه صافحانی؟ الگل زمی این معلومش که مثلا ناصری از زمین هم بدتره میگه دست به زمین خب معلوم به زمین که مایی تا حالت نیست تو قال کجای کافی هم هرچون عبا علی عشقه بده از کافی باشه نمیشه کدوم بابا شما بابا تسلیم بابا تسلیم یعنی سلام دادم با مجرد سلام رخونا متاقل لازمش اینه که بگیم به ترم باشه خوشم باشه انیتون. خب نمیشه ارتزام داد ارتزام معلومه محلوم مراد چیز دیگریه علایه حاله این مطلب رو این ما اجمالا شما چه فرم میوان سند چه اشفال د ز نادی که اگر این باشه, باشه, باشه, باشه وجود نداره نه بیار تو وقتی هست نه برای زنا هست هیچ کرد نداره. برای زنا توش نیست، اما چی بوده خارجیش چی بوده که آب تهش همافیه قصال اینها چیه مرازه؟ نمیشکند بیار من نداره بیار. خب نه خب بیار بیارم بیار میشه. آب نجد کسیفی ما <تصال> که در ما میشودند خودش میاد. از قدیمیان که قبلا خیلی کسی میشد همه ما ميرن. این آدم میره با اون خودشی میشه رو مفهوم مخفوم نداره. حسن ابن علی هم چون ابن نبی یعفور هست و طبقش کاملاً واضحه به قردین روابه کافی واضحه که همه روی مبنای خود ما که دیگه خیلی باید چون ما باید وسوخ پیدا کنیم که ابن نفرس داده. احتمال به دردوها نمیخوره. اشکال نداره. این چون ما وسوخ الان پیدا نمیخوریم. اون که دهلی از اصلا نباشه. او یه مبنای خود ما که خیلی واضحه که پراغانه اما حالا بحث روی مبنای آخرین هم شاهد واضحیست این که چون کلینی هم از همین کرده و همین من شاهد واضحیست و خود صدوق هم در کتابش نایه بوده من میشه صدوخ هم گیری داشته بسیار خود از کنم که پس این راجعه به این طاقه هست گفتم من همین یه طاقه رو متعرض میشیم بقیه تواقف روایات رو ترست که طولانی دیگه خودشون خوبشون مازیه کنن حالا این شبه به وقت دیگه دیگه باید صحبتی ما وقت برگردیم باز به عبارت محبوم قصداد ثبت روایات و الول عدیه و زیارات جواز لحن المخالفین حالا لحن یک طاقه معین چرا در عدیه از اما به عنوان اینکه که مخالف یعنی سنی فقط به عنوان سنی لندش مطلقن ولو مستضعت باشه الان من تو ذهنم نمیاد و مجوب البراعت من ها تو حدیث سهید داریم در سیهه ایمان ایمان یونسون عبدالرحمنه قال علیه اسلام منید من چیه اسلام ال... نه ال خمس نگی دیگه یکی سالات و سیام و البراعت من اعداء الله هنوان براعت من هر داری داخت داریم اما این که بدیم مثلا سنی مطلقا ولو مثلا متمایل باشه ولو مثلا جاهد باشه ولو آدم سالم, نفسه سالم باشه شبه داره بهش نرسیده اینها شاملشون میشه خیلی مشکله و اکسال سب به من الان من کلمه سب به یادم نمیاد ظاهرم سباب المسلم خسوبون داریم حالیشون روش اکثار سب و اتهام هم و لغیات این اتهام درباره اهل بدع داریم چطور توه باه توه و تقدم کلام که باه توه معلوم نیست اتهام بزنید دروغ بگونها بگیم این باه تو هم بگیم. مثلا برین بگین ای آقا من میدونم آقا مثلا شب میره مثلا راز شراب میخوره ما که نمی این کار اهل بدع هستا من خوشاغ نمیخوره بعضی گفتن که از این دوباره در میاد که اعمال بدی رو به اینا نسبت بدیم تا مردم از اونها متنفر بشه معلوم نیستم چیزی واضحه نیست. باهتون من رو اعطا کردم شاید بردا متفکر نوا واضحش این باشه اینها رو نسبت به بهتان بدیم یعنی بگید اینها بهتان زدن بر خدا و رسول اینا دروغ دران میگن نه اینکه شما دروغ به اینها نسبت بدید اگر ببینیم اهل بده و اهل ریع <تصفيق> کسانی که علی ریبه و اهل به دهر هستن اینها رو دیدیم به اینها بگیم این مطلبی که نهار کردیم میاد مثلا میگه امام این جو فرمده نه بگیم دروغ میگیم چیزی نیست حقیقت که گاهی الان مثلا فرض شبیه بناد بزن تو همین جریان مشروطه چی کلمه بله کلمه طلاح لغتالفی ها و گلوخ که در کلمه هر هم مشروطه ذاران نگفت خب و حدیث حدیثش اعلام نشود یا خاله و فیه شیخ طرسی فیسل و یفته خب معلومه آشکار ذو نور خب حدیث آثار جلبش واسه بگیم اینها دروغه اینها بهتان در اهل بیت مراد اینه اینا بر رسول الله اینا بهتان برای اسلام نه اینکه اتهام بزنم به اونها دروغ به اونها نسازم اون من به نظر من نساز دروغ من کار رو اونها تقییت میشن چرا که نفسش رو استفاد بکنید مثلا بگید این آقا مثلا شما شراب شراب بعد نفسش رو به ما بغون میشه میشه <تصفيق> اون اوقاتی کار اهل بدعت تغیر پیدا می‌کنه میشه که زن پیدا بکنه فکر تو هم بی معنی باشه این روایت اهل بدعت که میشه در نههم اهل بدعت وردیا اما این نیست اکثر سبب نیست لاش بله البته اینجا باز مسئله لحن ورده من در بحث سب ارز کردم خوبده قربه ما رواتی در مورد سب داریم سبابون مسلم کسو بود در مورد لعنم یکی دو تار روات داریم خیلیست ظاهر ظاهر می یعنی اصلش نیست مثلا اگه کسی رو لعن کرد انسان این لعن یک فرد در بین ما اگر اهلش بود با اون میخوره بله بر میگرد و به خود لاحن بیخوره این ما داریم اما این که تأکید شده باشه بر ل همه تو اهل سنت زیاد داریم در اینه تو روایت اهل سنت لاحظ الموسیل که قاتله توی روایت اهل سنت احادیث لحظی در مورد زیاد داریم ما اونقدر نداریم چون من همیشه میگم فرق ما با اونا رو دقت قطع خیلی دارم اونها خیلی من از پیام زیاد دارم حالا شاید به نظر مراجع بزرگ دینی وقتی یک مطلب خیلی مشهور باشه اما ما مثلا میگیم لا اجلتاً لا تلعن المؤمن، لا علی المسلم یا لعن المسلم اما احادیسون ازیاء خیلی متون فراوانی دارن من تصادفاً در وقتی که متراژ ساب شد نشدم نگاه به این کتاب به جمع حدیثی نوری رو اون رو نگاه میکردم تو بحث لعن خیلی دارن منم خودم اول باوره نگین نظروا در باب دهنده در باقه لعن اهل سنت زیاد حدیث ما ندارم اومدن. اصلا ما در خیلی رو نداریم. خاطر دارن. مثلاً در اونا زیاد دارن. در مکه؟ حالا این که داره که لهم بکنی مخالف رو با مخالف نه نیست. بعد فرمونم بر لا شبهت فی کفره. خودی ایشون رو از اولش در کتاب کنهی هم کفر در ایمانه. در مقابل اسلام بعد البته باز آخرش برگشتن گفتن نه ممکن از کفر حقیقی باشه فقط بعدی از آثار انصافش اینه که با مجموعه روایات و زندگی اهل بید و برخورده که شده همون کفر در مقابل ایمانه اصلا کردم خوب دقت بکن ما یه مشکل کردی داریم تیبی از این حتی جای دیگم از الفاظ روایات ما اون که در عنوان روایت در رسانه در یه شده. آلمان کلی مشکک هم وقتی کلی مشکک شد و مسادیق مختلف داشت درجات مختلف داشت اسرائیل ها به جمیعه درجات خالی شوقه نیست مثلا العلماء و منار رسول مثلا مثلا العلماء و رسول اندی خب آلم درجات رو مختلف این کسی که وظیفه خودش رو از توضیح و مساده خب آلم نیست اینه به درجه علم لذا ما این وقتی ارز کردید دعیب نیست که در روزاره که حالا گرورد باشه مذاکره علم در شب بعد از اخزله این شامل چهار تا مقلد میشن رساله‌ای حمله با مقابله تا سر بکنه این طلب علم پریزتون حالا کل موسوم شاید این درجات علم پیدا میکنه وظیفش علم بقول تعلیمه در درساله بعید نیست بعید است رمایاتی که در ماستو تکرار بشن بعید است رمایاتی که در لحظه علم آمده شامل علم تقلیدی هم بشه لازم نیست حتما علم اشداری باشه بله من نظرفی حلالنا حلال و حرام اونا ظاهرش اشداریه در روایات عمر بن عبد الله و خدیجه این اینطوره لكن به هر حال چون علم یک کلیه مشککه این همون میره با تا علمی که دیگه کاملا علم چون علم دین اون جهل و اساس نقطه شکش برام میکنه اون مقدار شکش چه مقدار باشه اون نقاط عقلی اموزیه خاطیستهش چه مقدار باشه خب تا جایی میرسه که یه هیچ نقطه خاطستری در حد بشری یا در حد عالم امکان نداره مثل علوم رسول الله و عهد بیتان خب چون کلیات شککن این درقیق را اراده جمعی مراتب احتیاجی به یک اراده ای این که مراد مثلا بگه علما و هم انبیاء همه علما، حتی این کسی رساله عملی عملیه دارده یا کسی مثلا دو سال تو رسال مخواسه خودی در جدش دار یا کسی که واقعا د ممکنه مراد این باشه ممکنه در درجه بالا باشه که ایمان معصوم باشه این طبیعت این الفاظ این مشکل رو ایجاد میکنه کلمه هم همینطوره کلمه ایمان هم همینطوره کلمه کف مثلا یا علی کفر بالله من هازل امه عشر خب میرم خیلیش کافر نیستن یا مثلا در خود ذیل آیه حد سال بر زمین تمسک اون رو باید مراد نیست. و من کفرت ان الله گفتم خصوص هجر کسی انجام نده، بقیه واجبات نه خصوص هجر که انجام ناده خاطر از انصاف قضیه چون اینها داره مراتب حمل این لفظ بر اون یک مرتبه معیم که مثلا مراده از اینکه اینها کافرن یعنی واقعا مسلمان نیستن در حقیقت اصلا از اسلام این نه با خود روایات در میان نه با مجموعه شواهد در میان نه با سیره و سلوک خارجی اهل بیت در میاد هیچ وقت نمیشینه اثبات کرد اثبات این مطلب فیقات سعوبت میخوره همون کفر در مقابل ایمان نه کفر در مقابل اسلام کیدم که ایشون دارن؟ بله و من جهدتون کافر هم که ایشون تمسک میکنن به زیارت جامعه. البته ما در اصولا در فقر در بین مثلا قدم های ما هم ساله پسیم ما و دیگران نداریم که به زیارت جامعه تمثل کردن در متأخیلیم داریم جواهر داریم نوارد داریم و متعارف فقهی ما نبوده که به الفاظ زیارت جامعه با اینکه زیاد زیارت جامعه هم در محتق به اصطلاح هم اصلش از محتق با کنم شیخ شیخ بعد بعدم شیخ توسی در تحذیب ارد محتق وقت و به خاطر مخصان اوبرن شیخ توسی شهرت باسه ای پیگم می کنه بیشتر این شهرتش بخاطر ذکر زیادت جامعه در کتاب به اصطوره تحذیر و شیده که ایشون هم از صدو بگرفتن هلا آیه حاله و فیزیاد جامعه من جهدکون کافر از هم جهده مراتب داره هم کافر مراتب داره این که ایشون امردن نمیشه به این درجه شبول کرد و من وحدهو قبل انخون به ان هم دیون چه جو به اصل مریض ان من لم يعلم عنهم لم نمیاد از دست چه مقام مقام اعتباره این دیو جزایا رو نمیشه از توشه و این کیشون نمیاد پی بعد پیاده از حد احادیث فی قضاء صلات مستقر ان الحاله التي كنت عليها بعد راسته، امام میفرمون چون وقتی که ولایت نداری چون ولایت به عنوان نقطه دایره است صلات و صوم مسون محیط دارد دور دارد. وقتی اون نقطه خراب بود، شما الان ث یک سال تنها نیست اون نقطه خراب شد تمام دا را فاصل می‌کنه. اینه. کل م وقتی یک مدش عبور باش باشد باید ما مجموعه را نگاه بکنیم که آیا این یه هدکان کافر، یعنی اگر کسی بگه من امام ایمان قاوردن، اونه کفر واقعی داره این خب اسمو ظهور جح، ظهور کفر، نه وجدنی خب هر چقدر ممکن است بگیم یک درجه از کفر در مقابل ایمان این که بعضی ما میبینیم در مجد، در, مجد، در خب همین دیگه ظهور میگن نه ببینید وقتی کلیه مشکک شد طبیعتشیه چیه طبیعتش اینه که بخواد اخذ به قضا و نصیرن مثلا این که بعض دونه بودن از و رسال انبیاء مراد اعمه است علیه مستان این چون قضا متعقنیه اللهمر هم خلقایی الذین بعدی یعطلمون سنتی و یعطلمون هنناس یرمون سنتی و یعطلمون هنناس بگیم مثلا که حتی این خود روایت کنی و که سنتی ما روایتی که الان می در نهتی را مثلا میگیم در یک کتاب معصر رسول. اما امام که علیه حسان فرانسان فرانسان فرانسان خیلی از علموه هاست خب اگه زهورش این چی کار بود ها وقتی کلیه مشکل شد قایدش این طوره که ما باید عقضه به یک مرتیقن بود خب اگه وجدانی که درست وقتی که ما بحثونی که با مجموعه شواهد این طور در میاد. با مجموعه شواهد این مطلب استفاده میشه نه اون کفر مسلم بعد اینکه در فی جمله من روایات الناس بلا نا اهل ال دی شامل من الیهود و النصارى و احوار من الکرد بله ایشون در این مطلب بله متعرض این روایت‌ها الی روایت‌ها در خصوص ناصبه این روایت قابل قبول نیست و یه نکته دیگه بود ایشون می‌فرمودن که در اینجا نبر بودن شاید مرادشون این بوده مقرر نیورده. و اون می‌شه بگیم ناصب چون روایت داره. ناسب اون است که فقط معتقده به جبت و تاغوت داره که تقدیم جبت و تاغوت اصطلاحا جبت رو به اولی میگن هم به دو بامید. مراد این است که تقدیم اولی و دوم یکی یک تیدم ناسب از اون این روز بختم یکی تو تا ربایت داریم یکیش که نصدتا از عمه متاخر ما رسیده که به بنابر بنابرای محروض امام متاخر یه حدیثی که شخصی زنان محمد ابن علی ابن عیسی قومی به امام حادی یا به امام عسکری نوشته که کیفیت امتحان ناصب چیه یک فیفی فی تقدیمی هی تا بود امام فرید یک فی این کفایت میکنه امدش این روایت یکی از امام متاخرم هست تا اونجا هم که من میدونم این آخرین امام نیست که این معنای ناسب آمده این روایت هم این شان الله اگر خدا هم توفیق دار، دیگه آن گفته هستند که دیگه میشه هم دوبار و هم تولانی میشه راجع به سندش یک بحثی فردا تو اصول، این شان الله که درس آینده اصول، چون یه روایتی از فردا این درسی اونا هم میشند. به ان شان الله. ما در اصول که کتاب مسائل محمد النهایی با می میشیم این الله. در اونجا این یکی از چون دیگه میده در اونجا هم هست. یک بار دیگه چون یک نکته‌ای هست که بعضو به خبر اون ان شاءالله موقع فرض در بحث اصول بگیم این یک یکیشن اصلو خواهیم گفت که این نوشتار ابحام های نسبتاً فراوانی داره یعنی مبهم هست یعنی چون از یک طرف شواهدی هست که امام با این مراعات تغییر کرده این یکیش باز به عكسه این مثلا شیخی خیلی و خود این شخص هر ما الان ایشو نمی‌شناسیم آشنای با ایشون امه هم آیین از خود طریق بیشان امه هم داره نصحی که الان به ما رسیده امه داره دیگه راجع به سندش و خصوصیاتش فردا عرض میکنیم احتمال همدارشونیشون در قم بوده و احتمالا دوز و قم بوده و احتمالا قدرت سیاسی بوده و از فرز از طرف حکومت ری چون در اون زمان قوم تابع ری بوده از طرف حکومتره به اصطلاح قدرت سیاسی داشته شاید مرادش این بوده که مثلا در قوم افرادی هستن که اینجوری هستن حالا که مرکزی شیعه بوده ایمان شاید میخواستن بگن اینایی که اینجوری هستن ناصرین به کاری باگذار نکنه مثلا در قوم اگر بشه توی قوم کسی که همین تقدیبی جبت و بکنه این کافی باشه یه احتمالی که ما در اون حدیث بودیم بیشتر اینه که فضیه خودش، این شرط تو نیست، این شرط تو روات نیست، این راویه، یعنی به این معنا سائله. مثل کسی که استعترم میکنن سوالاتی از امام حادی و امام اسکی از آن مردان، امام داره که امام موجی بیشتر، امام حادی و امام اسکی، اما در شبارت در تقریه احتمال داره شاید امام محسن این رو بگن که، مثلا این جور افراد رو در قب در کار نیاره. چیه که این, این ناسبی به این من و این من احتمال داره. اینا ناسبی هستن در کاری مثلا در احتمالی به اینها نه. دوم. این وچه اول بود که از کرده میکمی مشکلات داره. وچه ثانی امن المخالفین به اجمعه هم متجاهرونه به فصل بطلان حمله هم و اصلا کماف روایات المتظافره که مثلا الان که متجاهرون به فصل خیلی به موردشون شی مدره؟ فیض خنیز وقتی انسان شو به فیض مخصوصانه گذره آثاری است که دارند داره تنگیوس دارند داره اینه وقتی تصور میکنه نماز این روزیه که به حساب میذاره اگر بعضی روات داره که به امام میگه اونا به حساب میذاره خیلی مغایرتر از ماست نمیاد داری که صنجالشون افتاده خیلی نمازش اونا مغایرتر این مسجدی همون در فیض ایشان بله، بلکه از به ما هوه هنگام منالفسم اشغال اما هم سالیز هنر الماستفاده از آیات و, و روایات و غیبت آخر، غیبت الاخل مؤمن که در کدوم خود من از این مقطع و من بدیهی است لا احکام و لا اسم تبعیض مخالفین. این این هم خیلی مشکل و مثلاً امیر که به مالک نمشن که مردمی که در نظر حسن اخونده که دیم یعنی مراد مثلا خصوص از هستن من نظرم دارم توی نظر وجود داشتن بله حالا انا زاهدنه اخبار روالفی تفسیر به اختصاص و حرمت ها به مؤمن فقط البته بعد هم فقط توی بعضی از روایت رو مؤمن اما عرض کردیم توی خیلی دیم مؤمن نداره انترس که تو اخواب توش داره مؤمن تو داره اونم دیر و از مؤمنش هم مشکل داشته مشکل ثبوت داره البته برابر قیام و سیرت المستنبه بین عوام شیعه و علمائه علا غیبت مخالفی حالا من نمیم شور رو میشین سیره از عوام یا از علماء بر غیبت مخالفی وجود داره این بیده اصواقها علا خود مرمون اصواق بردس علا الان که اتماکان اون که از مرمون مقدس عدویل نفت البته اهل بدع هستن. ثیبت اونها در به بدعتشون جایز نیست. بله. مثلا میگن اینا منترفن، اینا از اذهب دست برداشتن، اون چیزی که متجاهرانه به کنه. اینها مثلا افادینی اینه که صلاحیت نداشتن مقدم کردن اینها اعمال زشتی رو عقیده دارن. مثلا همون قسی داره که گفت نماز ابو حمیده بخونه، شد با نبی و هم تو وضو خاصی رفتن کار که. مثلا این گفتن اینها اشکال نداره. اما فرض مثلا منبر مثال کاری دید. انجام بده و نمیخواد کسی بگه و متسخرم هست اینها جوازش با این ادله خیلی مشکله و الله <تصفح>